کانال تلگرامی هزار افسان، داستانهای افثانی صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده عزیمه علی گلزاده روزی و هادور روزی روزگاری پادشاه و ملکه ای بودند که فقط یه دختر به اسم هادور داشتند که خیلی مهربون و زیبا بود و چون تنها فرزند اونها بود تاج و تخت به او رسید پادشاه و ملکه پسرخونده هم به اسم هرمود داشتند که همسر هادور بود و خوش شهر و باهوش بود هرمود آها دور در دوران کودکی همیشه با هم بازی میکردن و به قدری هم رو دوست داشتند که وقتی هنوز نوجوان بودند بدون اینکه کسی بفهمه به هم قول استواج داده بودند. زمان گذشت و یک بار که ملکه مریض شده بود احساس کرد هرگز خوب نخواهد شد. کسی رو فرستاد تا پادشاه رو به اونجا بیاره. وقتی او اومد زن گفت که مدت زیادی زنده نخواهد موند. فقط یه خواهش از او داره اینکه اگه خواست زن دیگه ای رو انتخاب کنه فقط با ملکه هتلن ازدواج کنه پادشاه قبول کرد و کمی بعد ملکه از دنیا رفت مدتی گذشت و پادشاه که از تنهایی خسته شده بود کشتی خودش رو آماده کرد و سفر دریاییش رو آغاز کرد اما طوفان شروع شد و او دیگه نتونست جلوتر بره با مشکلات بسیار خودش خودشو به خشکی رسوند. کشتی اونجا لنگر انداخت و پادشاه به تنهایی پا به خشکی گذاشت. او کمی جلو رفت تا به یه جنگل رسید و در نقطه ای از جنگل زیر درختی نشست. بعد صدایی به گوشش رسید. او به سمت صدا رفت و به فضای بازی رسید که سه زن در اونجا نشسته بودند. یکی از آنها به صندلی تلایی تکیه زده بود و لباسهای زیبا و گران قیمتی به تن کرده بود. یک چنگ به دست داشت و خیلی غمگیم بود. دومی هم لباسهای زیبایی به تن داشت ولی جوانتر بود. او هم روی یک صندلی نشسته بود که به اندازه صندلی نفر اول اشرافی نبود. سومی ومی پشت سر اونها ایستاده بود و خیلی زیبا بود. وشنلی سبز رنگ بهتن داشت و کاملا مشخص بود خدمتکار اون دو نفره پادشاه مدتی به اونها خیره شد و بعد جلو رفت و سلام داد زنی که روی صندلی طلایی نشسته بود از اون پرسید کیست و به کجا میره مرد هم همه چیز رو تعریف کرد اینکه او پادشاه هستش و ملکش رو از دست داده و حالا به هتلم میره تا از ملکه اونجا تقاضای ازدواج کنه. زن جواب داد که سرنوشت مشکل او را حل کرده چون دوست ها هتلن را غارت کرده و پادشاه را کشتند و او هم از اونجا فرار کرده و با مشکلات زیاد جونش را نجات داده و خودش همون کسی هست که مرد دنبالش میگرده و اون دو نفر دیگه دختر و خدمتکارش هستند. پادشاه از او خواستگاری کرد و زن هم تقاضای اونو قبول کرد. بعد همه با هم سوار کشتی شدند و پس از یک سفر دریایی بی خطر به سرزمین پادشاه رسیدند. در اونجا جشنی برپا شد و پادشاه و ملکه با هم ازدواج کردند و تا مدتی همه چیز خوب پیش می رفت. هرموداها هیچ توجهی به ملکه و دخترش نمیکردند اما از طرف دیگه هادور و خدمتکار ملکه که اسمش اولوف بود خیلی با هم صمیمی شده بودند اولوف معمولا برای دیدن هادور به قصر او میرفت مدتی بعد پادشاه به جنگ رفت و قبل از اینکه برگرده ملکه با هرمود صحبت کرد و از او خواست با دخترش ازدواج کنه هرمود بدون خجالت تقاضای او را رد کرد ملکه از این کار او خیلی عصبانی شد و گفت حالا که اینطور شد اجازه نمیده با رو هم ازدواج کنه و اونو تلسم میکنه و اون مجبوره به سرزمین دور افتاده ای بره و در اونجا او روزها به شکل یک شیر خواهد بود و شبها به انسان تبدیل میشه و مجبور شب و روز رو به هادور فکر کنه و این موضوع ناراحتی او رو بیشتر خواهد کرد این تلسم باطل نخواهد شد مگر اینکه هادور پوست شیر را بسوزونه و این هم خیلی بعیده به محض اینکه حرفهای ملکه تموم شد هرمود گفت او هم ملکه را تلسم کرده و به محض اینکه تلسم خودش شکسته بشه او تبدیل به مار و دخترش هم به شکل یک موش در میاد و بعد با هم گلاویز میشند تا وقتی که او بیاد و هر دو رو با شمشیرش بکشه بعد هرمود ناپدید شد و هیچ کس نفهمید چه اتفاقی براش افتاده. ملکه یک گروه جستجو به دنبالش فرستاد اما هیچ اثری از او نبود. یه روز وقتی اولف در قصر هادور بود از شاهزاده خانم پرسید آیا میدونه هرمود کجاست؟ هادور ناراحت شد و گفت هیچ خبری از او نداره. اولف گفت پس من به تو میگم چون از ماجرا خبر دارم. ملکه با حیله هاش هرمود را ناپدید کرده چون او و دخترش جادوگر هستند و خودشون رو به این شکل درآوردند چون هرمود قبول نکرد به حرف ملکه گوش کنه و با دخترش ازدواج کنه اونو تلسم کرد که به جزیره دور افتاده ای بره و روزها به شکل یک شیر باشه و شبها به شکل انسان و این تلسم باطل نخواهد شد مگر اینکه تو پوست شیر را بسوزونی در ضمن او نقشی هم برای تو کشیده. ملکه برادری داره که در دنیای زیرزمینی زندگی میکنه. اون میخواد برادرش رو که یه اژدهای سه به شکل یه شاهزاده زیبا در بیاره تا با او ازدواج کنه. این کارا برای ملکه تازگی نداره. او منو هم از پدر و مادرم دزدیده تا خدمت کارش باشم اما هرگز نمیتونه آسیبه به من برسونه چون شنل سبزی که پوشیدم از من در برابر همه پلیدی ها محافظت میکنه. هادر با شنیدن نقشهی که برای ازدواج او کشیدند بیشتر ناراحت شده از اولف خواست چاری بیاندیشه. اولف گفت به نظر من خواستگار شما از زیر زمین قصر بیرون میاد به همین خاطر شما باید آماده باشید و به محض اینکه صدای اونو شنیدید و زمین شکاف برداشت غیر مذاب رو داخل شکاف بریزید تا او بسوزه همون روزها بود که پادشاه از جنگ برگشت و وقتی فهمید هیچکس از هرمود خبری نداره خیلی ناراحت شد اما ملکه اونقدر اونو دلداری داد که پس از مدتی شاه تقریبا به رو فراموش کرد هادور تو قصر خودش موند و منتظر اومدن خواستگارش شد. یه شب صدای قرشی از زیر قصر به گوش رسید. هادور فوری حدصد سد که صدا مربوط به چی و به خدمتکاراش گفت برای کمک به او آماده باشند. صدا لحظه به لحظه بلندتر شد تا اینکه زمین شکاف برداشت و هادور خدمتکارها را صدا زد و اونها غیرهای داخل دیگ را توی شکاف سرازیر کردند. با این کار، صداها ضعیف و ضعیفتر شد و بالاخره کاملا از بین رفت. روز بعد ملکه صف زود بیدار شد و جلوی قصر رفت و دید بدن بیجان جان اجدها اونجا افتاده. او بالای سر اجدها رفت و گفت: من وردی میخونم که تو تبدیل به یه شاهزاده زیباشی و هادر نتونه در برابر تهمت هایی که به او خواهم زد از خودش دفاع کنه. بدن اجدهای مرده تبدیل به یه شاهزاده زیبا شد و ملکه به داخل قصر برگشت. او به پادشاه گفت فکر نمی کنم دخترتو اون قطرها هم که میگن خوب باشه. برادر من از او تقاضای ازدواج کرد اما دخترت اونو کشته. من همین الان جنازه اونو بیرون قصر پیدا کردم. پادشاه همراه ملکه از قصر خارش شد و با دیدن جنازه خیلی تعجب کرد. او گفت که جوون به این زیبایی خیلی برای هادور مناسب بود و خودش هم با این ازدواج موافقت میکرده ملکه از او خواست تنهاش بذاره تا در مجازات هادور تصمیم بگیره و پادشاه با کمال میل پذیرفت چون دلش نمیخواست در مجازات تنها دخترش شریک باشه تصمیم ملکه این بود که پادشاه قبر بزرگی رو برای برادرش بکنه و هادور را هم کنار او در قبر بذاره اولف از نقشه ملکه با خبر شده همه چیز رو برای شاهزاده خانم تعریف کرد و هادار از او خواهش کرد راه حلی پیدا کنه. اولف گفت اول و مهمتر از همه اینکه وقتی میخوان تو رو توی قبر بذارم باید یه شنل گشاد رو لباس هات پوشیده باشی. روح اجده دنبال جسمش میاد و دو سگ هم همراهش میاره. او از تو میخواد پاهاش رو تکه تکه کنی و جلوی ها بندازی، اما تو نباید این کار رو انجام بدی مگر اینکه به تو بگه که هرمود کجاست و چطور میشه پیداش کرد بعد او به تو اجازه میده رو بری تا از قبل خارج بشی اما میخواد تو رو فریب بده وقتی رو رفتی شنلت رو بکشه تو باید بند شنلت رو شل کنی تا وقتی اجده ها اون رو کشید فقط شنل تو توی دستش بمونه قبل آماده شد و اجده ها رو داخلش گذاشتند. ها را هم مجبور کردن داخلش بره بدون اینکه اجازه بدن از خودش دفاع کنه وقتی اون دو با هم تنها موندن همه چیزهایی که اولف گفته بود اتفاق افتاد. شاهزاده دوباره تبدیل به اجدها شد و از هادر خواست پاهاشو تکه تکه کنه و جلوی سک بندازه دختر قبول نکرد تا وقتی که اجدها به او گفت که هرمود در جزیره دور افتاده است و پاش به اونجا نمیرسه مگر اینکه، پوست کف پاهای رو بکنه و از اونها کفش درست کنه چون با اون کفشها میتونه روی خشکی و آب راه بره هادور کار رو کرد و اجدهها اجازه داد او روی شونش بره و از قبر خارج بشه به محض اینکه دختر خواست بیرون بره اجدها شنل او رو کشید اما حواس دختر جمع بود و فقط شنل در دستهای او ماند و دختر هم فرار کرد او به طرف دریا به راه افتاد چون میدونست خوداترین راه برای رسیدن به جزیره است که هرمود درونه. او خیلی راحت این مسیر رو طی کرد چون کفش ها او را رو روی آب نگه می داشتند. وقتی به جزیره رسید و پا به ساحل سنگی اون گذاشت چشمش به سخراهای بلندی افتاد که نه راهی برای بالا رفتن و از اونجا وجود داشت و نه بعد از اون سفر طولانی دختر دیگه رمق راه رفتن داشت. به همین دلیل روی زمین دراز کشید و خوابش برد او در خواب دید زنی قد بلند به اون نزدیک شده شد و گفت من میدونم دونم تو خانم خانمها دور هستی و دنبال هرمود می گردی او همینجاست ولی رسیدن به او خیلی سخته چون تو بدون کمک نمیتونی از این سخراها بالا بری بنابراین من تنابی را از اون بالا آویزون می کنم تا به کمک اون بتونی به قله برسی و چون این جزیره خیلی بزرگه و تو ممکنه نتونی محل زندگی هرمود رو پیدا کنی من نشونت میدم تو فقط کافیه سر این نخ رو که کنارت هست بگیری و جلو بری در زمد یه کمربند هم برات میذارم و هر وقت بیدار شدی اونو به کمرت ببند این باعث میشه که گرسنگی تو رو ضعیف نکنه زن ناپدید شده ها دور از خواب پرید و دید خوابش واقعیت داشته تناب از سخره آویزون بود و نخ و کمربند هم کنارش قرار داشت او کمربند رو بست و با کمک تناب از سخره بالا رفت و نخ او را به دهانه غار نچندان بزرگی رسوند او وارد غار شد و چشمش به تخت کوچکی افتاد زیر اون رفت و دراز کشید با تاریک شدن هوا صدای پایی از بیرون به گوش می رسید. دختر فهمید شیری به قار نزدیک میشه. او جلوی در خودش رو تکون داد و بعد صدای مردی به گوش هادور رسید. او مطمئن شد که اون مرد هرموده چون با خودش حرف میزد و خاطرات گذشته را مرور میکرد و اسم هادور را به زبون می آورد. هادور از جاش تکون نخورد تا وقتی که هرمود به خواب رفت. بعد او از زیر تخت بیرون اومد و پوست شیر را که جلوی قار افتاده بود آتش زد. اون وقت به داخل غار برگشت، هرمود رو بیدار کرد و هر دو از دیدن هم خوشحال شدند. صبح روز بعد، اونها با هم مشورت کردند که چطور باید از جزیره خارج بشن. خادر خوابش رو برای هرمود تعریف کرد و گفت این نشون میده که یک نفر در جزیره هست که میتونه به اونها کمک کنه. هرمود گفت جادوگری رو میشناسه که اونجا زندگی میکنه، حاضره به همه کمک کنه. به این ترتیب اونها به قاری رفتن که جادوگر و پانزده پسرش در اون زندگی می کردند و برای برگشتن به کشورشون از او کمک خواستن. زن گفت این کار ساده ای نیست چون اجده مرده خود را به شکل نهنگ بزرگی در و بین راه به شما صدمه خواهد زد. من یه قایق به شما قرض میدم اما اگه با نهنگ روبرو شدید و احساس کردید جونتون در خطره اسم منو صدا کنید. اونها از کمک و راهنمایی او تشکر کردند و باقای به راه افتادند. اما بین راه متوجه یه ماهی غ پیکر شدند که به طرفشون میومد. اومد و روی آب موجهای بزرگی درست میکرد. اونها می دونستن اون کیه و به این نتیجه رسیدند که جادوگر را صدا بزنند و فوری دست به کار شدند. یه لحظه بعد چشم اونها به نهنگ بزرگی افتاد که همراه پانزده نهنگ کوچکتر دنبالشون میومدند. همه اونها از کنار قایق گذشتند و به سراغ نهنگ رفتند. نبرد سختی در گرفت و روی آب موجهای بلندی به وجود اومد. طوری که هر لحظه ممکن بود آب وارد قایق بشه و اونا را غرق کنه. کمی بعد، جنگ به پایان رسید و دریاچه پر از خون شد. نهنگ بزرگ و پانزده نهنگ دیگه ناپدید شدند و اونها صحیح و سالم به سرزمینشون رسیدند. حالا میریم به سراغ تالار قصر پادشاه که اتفاق‌های عجیبی در اون افتاده بود. ملکه و دخترش ناپدید شده بودند و به جای اونها یه مار و یه موش در وسط تالار به جون یک یکدیگه افتاده بودند. مردم سعی می‌کردند اونها رو از اونجا دور کنند اما موفق نشدند. مدتی گذشت و پادشاه در این مدت یه گوشه نشسته بود و قصه میخورد چون هم ملکه را از دست داده بود هم اون دوتا ور اونو کلافه کرده بودند یه روز غروب وقتی همه قمگین و دلشکسته در قصر نشسته بودند هرمود در حالی که یه شمشیر به کمرش بسته بود وارد شد و به پادشاه سلام کرد پادشاه که فکر میکرد اون مرده از دیدنش خیلی خوشحال شد هرمود قبل از هر کاری به تالاری رفت که موش و مار در آن با هم میجنگیدند و با شمشیرش اونها رو دو تکه کرد همه از دیدن دو جادوگری که روی زمین افتاده و مرده بودند حیرت کردند هرمود همه ماجرا را برای پادشاه تعریف کرد او خیلی خوشحال شد که از دست او موجودات پلید راحت شده بعد از هادور خاستگاری کرد و پادشاه فوری قبول کرد و چون دیگه پیر شده بود سرزمینش به او سپرد و به این ترتیب هرمود پادشاه شد خللف با اشراف ساده ازدواج کرد و این پایان داستان ما بود کانال تلگرامی هزار افسان، داستان های افسان ای صوتی نشانی کانال تلگرامی، T نقط می مهران نقط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 مهران کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد بستانی